سلام آقا روز بخیر روز بخیر بفرمایید ما دوتا تا کوله پشتی می‌خوایم آن کوله پشتی چند است کدام کوله پشتی آن کوله پشتی مشکی آن بالا کنار کیف سفید بله بله آن کوله پشتی هفت هزار تومن است مثل آن رنگ دیگر هم دارید بله. آن کوله پشتی سه رنگ دارد. مشکی، آبی، سبز. ببخشید این کوله پشتی قهوه ای چند است؟ آن 9000 تومان است. کمی بزرگتر است. اینجا چند نوع دیگر هم داریم. لطفاً آن کوله پشتی را بیاورید. سمت چپ، پشت شیشه. بفرمایید. از این نوع کوچکتر هم داریم. پس من همان را می‌خواهم چشم همین الان